بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد الحمدلله رب العالمين الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله تیبین الطاهرين المعسومین لا ما بقیت الله في الارزین اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزت أما ویسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على الأئمة الحادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسوله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على السديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين شباب اهل للجنة أجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العبدين السلام علی محمد ابن علي باغر علم النبيين السلام علی جعفر بن محمد الصادق السلام علی موسى بن جعفر الكازم السلام علی علي بن موسى الرضا. السلام علی محمد ابن علي الجواد السلام علی علي بن محمد الهادی، السلام علی الحسن بن علي الزكي الأسكري السلام علي الهجث ابن الحسن القائم المحمدي السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وباقي الليل والنهار ولا ولجعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام علي الحسين و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین عرض کردم مرحوم علامه مجلسی در جلد چهل و بهار صفحه دویست و و هشت از امام باغر علیه السلام نقل می که امام باقر فرمودن وقتی جد ما امیر المؤمنین علیه السلام از سرزمین کربلا عبور می نگاهی به اون سرزمین انداختند و فرمودن ها خونا این منطقه این سرزمین مناخ و رکابن و مسار و عشاق شهدا لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم اینجا جایگاه فرود آمدن بزرگان است و محل جانباختن و شهادت آشغانی که نه قبلی از اونها سبقت جستن و نه بعدی ها بر اونها سبقت بجویند خب این موضوعی شد که ما به عنوان شیعه و پیرو مکتب امیر المؤمنین و شیعه ابی عبدالله الحسین علیه السلام در این ایام خاصی که ایام عزای ابی عبداللهس به فکر فرو رویم شهدای کربلا چه کرده بودند که امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امام که گذافه ندارند سخنی بی جان می گوین جز حق بر زبان اونها جاری نمی شود بفرمایند اینها مقامی دارند که نه قبلی ها به اینها رسیدن و نه بعدی ها می توانند خب ما چه میآموزیم دو نکته را در درایت این روایت باید فرا بگیریم یک اینها چه کرده بودند؟ می توانیم بفهمیم یا نه؟ به اندازه ای که می توانیم بفهمیم آیا وظیفه نداریم آشنا شویم؟ مطلب دوم. به اندازه ای که ما می توانیم از اونها تبعیت کنیم و الگو بگیریم رهچنان رو که رهروان رفتند رفتن اونها چه کردند که از دید امیر به این مقام رسیدن و ما اگر بخواهیم از اونها الگو بگیریم زندگیمون، رفتارمون، کردارمون را به اندازه توانمون انگونه بنماییم. خب دیدیم که امیرالمؤمنین دو تا واژه رو در رابطی با اینها به کار بردن یک شهید دوم عاشق بحث شهید و شهادت در فرهنگ دینی معلوم انسانی که برای خدا بالاترین سرمایه خودش جان را در طبق اخلاص می‌گذارد لله از جان خود می‌گذارد این شهید است خب خیلی هم ارزش داره اگر در فرمایش امیرالمؤمنین ویژگی شهدای کربلا فقط شهادت ذکر شده بود خب باید توی این کلمه مقداری بررسی کنیم که آیا قبل از ابی عبدالله شهید راه خدا نداشتیم چرا بعد از کربلا و شهدای کربلا شهدائی که جانشون را برای دفاع از دین در راه خدا باختند و دادن نداشتیم چرا ولی نحوه شهادت را امام علیه السلام با یک کلمه آشغ بیان کردن او شاقن مسار او، اشاغن شهدا، آشغانی که شا... شا... شا... شهیدانی که شهادت آشقانه دوشتر خب طبیعتاً ذهن انسان رو درگیر می‌کنه یعنی چی؟ شهادت آشقانه چیست؟ عمل انسان که میتواند انسان را به درجاتی نائل کند همون گونه که از قرآن کریم آموختیم لیس للانسان الا ما سعا و درجات مما عملو و ما ربکب غافلن اما تعملون این عمل صبر مختلفی میتواند پیدا کند گاهی اعمال ما احساساتی حیجانی تقلیدی کورکورانه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو ما هم اینگونه عمل میکنیم این گونه اعمال ارزشی نداره ارچند کمیت بالایی داشته باشد ولی کیفیتی که عمل را عمل کند و به یک نتایج برساند نیست. اما عوامل دیگری که باعث عمل می شود اگر حس قدرت الهیست در وجود من و کارش احساس است بینایی ببیند شنوایی بشنود ولی سرمایه ارزنده بعدی به پشتوانش نیاد عقله چه بسا مطالبی ما بشنویم از طریق گوش که عقل رد کند دیدنی ها رو از طریق چشم ببینیم عقل فرمان نحی بدهد که چرا میبینیم یعنی این دیدن به ضرر است و این مطالبی که میشنوی نه تنها برای شما منفعت ندارد مذرم هست پس اگر حس یک ابزار معرفت است و می تواند زمینه اعمال و افعالی شود همراه عقل نباشد نمی تواند مفید قرار بگیرد به همین جهت شما می بینید مثلا بعضی وقتا در یک جمعی نشسته اید شخصی سخنی نقل می کند فلانی چونین گفت شما می گید بعیده نمی این حرفا قبول کرد چطور؟ چون با عقل تطویق نمی کنه اون قدرت تفکر و تعقل انسانی مطلب را نمیپذیرد. مخصوصاً مخصوصا اگر نسبت به شخصیتی بدن که شما بر مبنای عقل یقین دارید که از اون شخصیت چون این سخن گفتن قعید به نظر بیاد. پس اینجا معلومه باید در کنار شنیدن ها در کنار خوندن ها در کنار دیدن ها بیه تعبیر عام در کنار حس عقل هم بیاید عقل با علاوه حس عقل با حس معرفتی ایجاد می کند که زمینه اعمالی می شود که اون اعمال را آقلانه اندیشمندانه متفکرانه می گوییم خب در جای خودش بسیارم خوب و ارزنده است. به همین دلیلم در روایات ما تأکید شده اگر یک عمل را دو انسان یکسان از نظر ذات عمل انجام بدن، مثل مثلا نماز خوندن، دو رکع نماز صبح را، دو تا انسان، هر دو با قرارعت صحیح، هر دو با تهارت درست، هر دو با مکان پاک، هر دو با تمام شرایط دیگر سالات به جا بیارن. اما یکی از اینها، از معرفتی ارزنده برخوردار باشد که دیگری اون معرفت رو نداشته باشه در زبان معصوم آمده است که نماز یک انسان با معرفت به اندازه هزار رکعت یک نماز یک انسانی که اون معرفت رو نداره ارزش داره پس این بیایم ریشه عمل رو که میبینیم عملی که از احساس، از تقلید از برخورد تنها عاطفی خارج شود مسائل عقل و اندیشه هم درود خالت کند اما بحث اینجا امیر المؤمنین علیه السلام نفرمودن شهیدانی که عقلانه به شهادت رسیدند، اندیشمندانه به شهادت رسیدن قید آشق و آشقانه را آوردن متاسفانه برخی این برداشت غلط رو پیدا کردن و یک جریانی شده در طول تاریخ نهله هم پیدا شده که تصور می عشق با عقل جم نمی شود و این خطرات بسیاری دارد چون اگر خاری را آشقانه دانستیم که عاقلانه نبود ممکنه به بهانه آشقانه بودن هر خلافی رو طرف انجام بده هر عملی رو مرتکب بشه بعد به بحانه این اینکه این عمل آشقانه است، ناعقلانه توجیه کنه این نه با آیات قرآن تطبیق میکنه نه با خود عقل تطبیق میکنه نه با روایات معصومین تطبیق میکنه که بحثش رو گذشته داشتیم اما دسته دوم این برداشت درستی را که عقلا و نقلن کردهاند و تحلیل دقیقم در خصوصش دارند چیست؟ کار آشقانه منافاتی با کار عاقلانه ندارد ولی یک مرحله جلوتر می رود. از یک ویژگی بیشتری هم برخوردار می شود برای روشنتر شدن در ادامه بحث شبهای قبل که امشب بتوانیم به عنوان آخرین فرصتی که در محضرتون هستم جمبندی کنم عنایت بکنید یک سرمایه وجودی بنده و شما حس است که احساس محسوسات میکنه یک سرمایه وجودی بنده شما عقله که ادراک معقولات میکنه عقل در محدوده خودش بسیار عالی و ارزنده اما ممکنه کاری از حس بر بیاد که از عقل بر نیاد بله میشه مثال میزنم الان اگر بنده از حضرت عالی بپرسم این آبی که روی میزه شیرینه یا تلخه به نمیدونم بگم فکر کنید عقلتون رو به کار بندازید این جای عقل نیست این کار عقل نیست این باید بکشم حس چشایی راحت میتونم بگم شیرینه یا تلخه پس اینجا ولو کار بسیار ساده است ولی کار عقل نیست اما این به معنی کوبیدن عقله نه عقل در محدوده خودش تو کلیات مفاهیم کلی معقولات خیلی هم میده خیلی کارا میکنه اما این کار کاره عقل نیست کار حس حالا اگر حس در یه محدوده ای حق دخالت داره در محدوده دیگر حق دخالت نداره تو معقولات حس نمیتونه جواب بده یکی از اشکالات منطقی بسیار درست از حکمای الهی به ماتریالیستا همینه در بینش امپریستی کسانی که میگن ما غیر از حس ابزار معرفتی نداریم اما ما برای ماده و ما برای محسوسات را قبول نداریم ایرادی که منطق بر اونها میگیره همینه میگه اگر ابزار معرفت فقط حواس باشد فقط میتونه بگه محسوسات هست دیگه نمیتونه بگه غیر محسوس هست یا نیست اونجا موضعش موضع سکوت و نمیدانمه چرا اظهار نفی کردی و این سبک منطقی غلطه و همون معنا اینجا ما این بحث مطرح میکنیم اگر حس در یک محدوده حد اظهار نظر داره تو محدوده دیگر حق اظهار نظر نداره نمیگیم حس بده میگیم حس را در محدوده خودش قبول کن اگر عقل در یک محدودهی حق اظهار نظر داره توی محدودهی دیگر کار عقل نیست میگیم تو در محدوده خودت باید اظهار نظر بکنیم حالا اینجا علاوه بر عقل ابزار دیگری که خداوند در وجود من و شما قرار داده که او کارش عشقه یک مرحله دیگری برای انسان مطرح میشه اون چیه اون دله ما همونطوری که حس داریم و عقل دلم داریم عقل داریم دلم داریم کار عقل ادراک معقولات درست کار دل شهود حقایق و کار دل دلبسته شدن وابسته شدن محبت پیدا کردن که اوج این محبت رو بهش میگیم عشق عشق دو حبن عشق علاقه شدید قلبی به چیزی پیدا کردن خب پس اگر دل آمد میدان و چیزی را به عنوان دلبر انتخاب کرد دل بسته به اون دلبر شد این کار دل درسته ولی عقل میتواند دخالت کند به این معنی که صاحب دل این مطلبی را که به عنوان دلبر برگزیده ای و دلداده او شده ای این ارزش دلبری ندارد این عقل میتونه و لذا اگر مطلبی را عاشق شیفته دلداده سر از پا نشناس نسبت به محبوب و معشوقش مطرح میکند عقل استدلال می کند که این معشوق ارزش معشوق بودن ندارد، دل دل شده است، ولی دل شده به چیزی که ارزش دل شدن ندارد. اینه میگن عشق غلط، اینه میگن عشق ناسعی، همونطوری که اگر عقل خطا کند، مقالطه کنه، سبست کنه. باطلی رو به جای حق بپذیره شما با دقتهای عقلی بهش میگید عقل بد نیست ولی بد استدلال کردی نتونستی نتیجه درست بگیری این نتیجه گیرید غلطه بذار کنار سیستم تفکر و تعقلت رو درست کن همینجور عقل در مورد عشق و عاشق میتونه این نظر رو بده میگه دل بستن کار من نیست چون من عقلم من دل نیستم من کارم در که در مرحله عقل نظری روح هست ها و نیست ها نظر میدم تو مرحله عقل عملی تو باید آب و نباید ها نظر میدم این درست اما اینکه عاشق بشه شیفته بشه دل بسته بشه وابسته بشه شوق پیدا کنه اشتیاق پیدا کنه سر از پا... این کار دل من قبول دارم ولی اینو میتونم به توی دل کمک کنم بگم جناب دل دلبری که انتخاب کردی به درد دلبری نمیخورد. خورد دلبری که برگزیده ای با استدلال ثابت میکنم که ارزش دلبری ندارد نظامی در یک تعبیر زیبایی به صورت سمبولیک این رو اینگونه بیان میکنه میگه میدونید مج... می لیلی و مجنون واقعیت خارجی ندارن سمبولیکه برای تفهیم مطلب گفتن میگه مجنون وقتی شنید لیلی مرد سراسیمه آمد در خانه لیلی مادر لیلی رو دم در دید گفت لیلی مرد گفت, گفت برای من پیامی چیزی گفت چرا نامه ای نوشته گذاشته نامه رو آورد داد به مجنون مجنون نامه رو نگاه کردید لیلی نوشته مجنون در عشق من مجنون شدی سر به بیابانها نهادی دیدی از تو گرفته شدم برو مجنون اون شو که از تو گرفته نمیشود. یمان کردی که من لیلا پرستم که من لیلای اون لیلا پرستم اینو عقل میفهمه یا نه عقل میفهمه اگر زیبایی یک ارزش است و دل برخی ها را میبرد دلداده یک زیبا شده نشون میده زیبا آفرین را نشناخته که دلداده زیبا شده اینو عقل میفهمه میگه با بودن زیبا آفرین دلدادگی به زیبا پله پایینه پس بیا بالاتر لذا عشقی ارزنده است که مقدمات عقلی و ادله درست اثباتی فکری تاییدش کند اهل فن در شهودهای قلبی حتی این مطلب را بیان کرده در کتب مهم درسیشون مثل تمهید القبائد مثل مصباح الانس این مطلب آمده تصریح شده اگر کسی در مقام شهود قلبی شهودی داشت که با عقل و شرع تطبیق نکرد قطعا اون شهود غلطه معلومی که یه چیزایی دخالت کرده پس باید هماهنگی وجود داشته باشه اینجا برای روشنتر شدن مطلب و تکمیل عرائض شبهای گذشته دو تیکه اول از نهجل بلا ارزو کنم یکی در جنبه اثباتی، یکی نفی و خیلی ظریف و قشنگه قسمت اول خطبه دویست و مولا فرمودن عقل و دل با هم دیگه قبلا ارز کردم اگر عقل بگن، لب بگن، نها بگن، هجر بگن اینا به معنی عقله اگر فعاد بگن به معنی دله اگر قلب بگن به معنی عقله به علاوه دل مگر غرینه داشته باشه قلب به معنی فعاده غرینه داشته باشه قلب به معنی عقله اینجا الان با قرینه شما انایت میکنید. حضرت عقل و دل دارن بیان میکنند. قلبی که در کنار عقل اومده اینجا به معنی فعاد و دله قد احیا عقله اونی که عقلش رو زنده کرد، فعال کرد، پویا کرد و امات نفسه اینجا نفس و منی اون نفسی که کردم نفقه روح الهی در وجود ما و نفسه و ما سواها و الحمه ها و تقواه ها نیست اینجا نفس معنی هوای نفسه حذف ما علم داره هوای نفس وگرنه ذات نفس که باید باشه تا ما تعالی بکنیم پیدا بکنیم اون نفس است که یه جنبه درکیش و عقل میگیم اون نفسه که یه جنبه شهودیش و دل میگیم اون نفسه که یه جنبه قدرت احساسیش و احساس میگیم به قول حاجی سبزواری نفسه فی وحدتها کل القبا همه این قبا مال نفسه حالا اینجا هوای نفس قد احیا عقله اقلش رو زنده کرد پویا کرد فعال نمود و عمات نفسه نفسهو هوای نفسشو کشت حتی دق جلیلوه و لطف علیزو تا این غلظت ها، وختی ها، زشتی ها، این تیرگی ها رو از دنیای وجودش زدود و کنار برد بحثای شبای قبلیاتون بیاد اگر دل به منزله آینه است خاصیت آینه اینه, اینه که حقایق در خودش منعکس بکنه ولی آینه ای که زنگار دارد، قرد و قبار دارد، خاشاک دارد اینا میگه عقل را زنده کرد، هوای نفس را میرونده پس معلومه زنده شدن عقل برای میروندن هوای نفس هم باید در کنارش باشه تا این لطافت وجود حاصل بشه بعدش بعدشی بشه و برق لهو لام اون کسیر البرق یک نورانیتی در دنیای دلش پیدا می شود خیلی درخشنده و نورانی فعبان له طریق و سلک به سبيل به مبنای اون نورانیتی که عقل زنده و تزکیه نفس که هواها را از وجود زدود و کنار برد نورانیت دل حاصل می شود این نورانیت دل فعبان له طریق فاورده نتیجه و فرع بر این امر این است که راه رو براش روشن میکنه و سلکه به سبیل. حالا راه مشخص نحوه حرکت معلوم چجوری را بریم. راه رفتن بر اساس اون نورانیتی که سر راهش قرار گرفته. شما در تاریکی چجوری را میرید؟ انسان هر لحظه خطر سقوط را میکنه. خطر زمین خوردن حس میکنه خطر برخورد به چیزی حس میکنه تا زمانی که این نورانیت به وسیله زنده شدن عقل و تزکیه نفس سدودن این هوای نفس از دنیای درون صورت نگیرد اون نورافکن در این دل روشن نمیشود. تا زمانی که اون نورافکن در این دل روشن نشود راه را از چه تمیز نمی بدهد و لذا حرکتش حرکت کورکورانه در فضای تاریکه این قسمت اول خطبه 220 حالا از خطبه 109 نقطه مقابلش رو مولا چی فرمودن؟ قد خرقت شهوات و عقلهو نقطه مقابل احیا عقلهو قد خرقت شهوات و عقلهو شهوت هوای نفس، خودخواهی ها، منیت ها، همونی که فرمود امات نفس. اونی که باید این هوای نفس رو بمیرانه نمیرون. اینا در وجودش گل کرد، عقل رو پاره کرد. قد خرقت شهوات و عقلهو. و اماتت دنیا قلبهو. اینجا قلب به معنی دله. چون عقل رو قبلا بیان کرد. این دل همونی که در اون خطبه 220 از رچی فرمودند وقتی عقل زنده شد تزکیه نفس صورت گرفت دل نورانی می شود اون نورانیت دل روایت که دیشب از امام صادق علیه السلام خوندیم که این استزایه‌ای که بر مبنای اون فعالیت عقلی دل می کند مثل چراغی راه را می نمایاند. اینجا نقطه مقابلش قد خرقت الشهوات و او، عقلش عقلشو پاره پاره کرد و اما تت دنیا قلبهو تعلقات دنیوی وابستگی به دنیا دل را می روند و ولحت علی آن نفس نفسش را واله و حیران و سرگردان کرد فہو عبد لها حالا چون عقل پاره پاره شده نمیفهمه دل هم بر اساس اینکه عقل نمیفهمد شهوات اومده دل را گرفته دل مرده حالا که دل مرده شده عبد دنیا و لمن فی یدی حی منها. حالا این انسان شیفته واله عبد است که همین تعلقات دنیایی توشه یه جمله ای سعدی داره توی گلستانش قشنگه اینو توضیح میده میگه پادشاهی به پارسایی گفت هیچ ما را یاد میکنی خوب دقت کنید پادشاهی به پارسایی گفت هیچ ما را یاد میکنید در دلتون توجهی به ما پیدا می شود گفت آری هرگاه که خدا فراموش شود هرگاه که خدا از دلم برود به یاد شما می افتن. یعنی چی؟ یعنی عقل پاسبان حرم دل است که چی بره توش اگر عقل را از کارایی گرفتی پاسبان نگهبان دل مرد به جای این که دوست در حریم را پیدا کند دشمن وارد می شود دشمنم کارش شد دشمنی چیز دیگری نیست پس عشق عاقلانه یعنی چی؟ یعنی قبل از دل بستن قبل از عاشق شدن قبل از شیفت و فریفت گشتن، قبل از اینکه حب حاصل شود عقل محبوب را شناسایی می کند. بعد از اونی که محبوب واقعی به دل معرفی شد، میگه حالا دیگه کار توه. بیا میدون، خودت رو با این محبوب نا کن معنوس بشو من با علم الیقین تا اینجا به تو کمک کردم حالا به بعدش تو با قدرت دلیت با قدرت شهودت این الیقینیش کن حالا این الیقینی کردی میتونی تا مرحله حق الیقینیشم پیش بری یعنی چطور؟ اجازه بودید بازی مثال ارز کن. خوب دقت کنید آقا همونطوری که خاصیت عقل ادراکه اگه عقله باد ادراک کنه مگر اینکه از عقل بودن بیفته خاصیت این چشم دیدنه مگر اینکه از خاصیت چشم بودن بیفته خاصیت دل دل بسته شدن محبوب پیدا کردن و محب گشتن این خاصیت دل حالا اگر این چشم خاصیتش دیدنه من وقتی باز میکنم به هر طرف دیدن قطعیه ولی یه وقتی پاسبانی قدرت کنترل به من میده میگه که شما این رو نگاه نکن اون ور رو نگاه کن تو این نگاه کنی میبینی اون نگاه کنی میبینی ولی نگاه اینور برات مزره نگاه اون برات مفیده همینطور عقل با دل میگه تو قرار دل بسته بشی اگر بخوای به یک اموری دل بسته بشی که ارزش دل بسته نداره تو میاره پایین پس بیا اول شناسایی بکن اون چرا که ارزش دل بستن داره در کتاب مستدرک نهج البلاغه صفحه 176 یک روایت جانانه از مولایمون امیرالمؤمنین در این دابطه ببینید چقدر زیباست العقول و امت الافکار عقلها امامان پیشوایان افخارن امه جمع امام امام پیشوا زعیم امام جماعت او باید جلو واسه شما پشترش بشه او رکو شما رکو بری او شما رو با خودش میبره امام معصوم علیه السلام قرار شما دنبال روش بشید هرچی او فرمود شما بگید چشم عقل امام فکره یعنی عقل است که فکر رو با خودش میاره لذا عامل فکر میشه عقل پس عقل باید فکر کنه خیلی خوب بعدش چی ول افکارو ائمه القلوب فکرها دلها رو دنبال خودشون میکشونن چقدر زیبا و قشنگه تحلیل بحث چند شبر رو دقت کنید گفتم عقل پاسبان دل پاسبان حرم دل شده امشب همه شب تا در این پرده به اندیشه اون نگذارم عقل میاد دهانه دل من و شما وای میسه اگر عقل باشه مگر اینکه و میرندیم چقدر در تاریخ اسلام کارانه آگاه و ناآگاه دست به دست هم دادن عالم متحدک و جاهل متنسک امت اسلامی را از تعقل درست باز دارن از اشاعره بگیرید تا به اخباریون برسید همش حساب شده بوده لذا اینجا چی میگه میگه علو عقول و ائمه افکار عقل ها پیشوا و امام فکرن اگه امام ورداشتی خب مأمون سرگردونه امت بی امام بیچاره است فکر بی عقل که معنا نداره باید این عقل سالم باشه فعال باشه کوشا باشه مثال قشنگی رو برخی اهل فضل میزنن ریشه هم تو نحول بلاغ است خوب دقت کنید تو بدن تو این بدن آقا اون وزن برداری که یه وزنه سنگین و بلند میکنه میذاره سر جاش چه تفاوتی با بنده و شما داره؟ حالا یه وقت سن ما مثلا بالاست اون جوونه نه دوتا جوون هم سن سال هر دو هم الحمدلله سالم و قوی البنیه ولی یکی از اینا وزنه دویس کلوی بلند میکنه اون دیگری میگه آقا کار من نیست اون چی کار کرده؟ تمرین کرده هی تمرین هی تمرین هی تمرین این نیروشو بروز داده حالا همین آقایی که این تمرین رو کرده و همچو توانی داره اگه این دستشو شما دو ماه سه ماه نشکسته توی قالب گچ اینجوری ببندید بعد از دو ماه دستشو باز کنید میتونه وزنه رو بالا پایین کنه دست خواب رفته این انرژیش پشمورده شده باید دوباره با فیزیوتراپی و هی عرکت دادن و هی چی فعال کنید با فکر نکردن به خواب میرود با عدم تفکر و تعقل جلساتی که با داستان سرایی و تنها آوازخانی مردم رو معطل می کنن فکر را به خواب می برن اون گونه که مولات و نهجل بلاغ فرمود نعوذ بالله من صبات العقل پناه میبرن به خدا از اینکه که عقل به بره امام باید بیدار باشه امام جامعه رو جامعه شناسان تشبیه می کنن به خلبان عواب خلبان هواپیما فیما خابالوده تکلیف سرنشینان چی میشه؟ ساقت خواهند شد اگر خلبان و راننده است باید حواستش عقل امام فکره پس عقل باید بیدار باشه بیداریشم مولات و خطبه دویست و بیست فهم بود بعد احیا عقله و امات نفسه این عقل فعال کنه این فعالیتش و تفکر خب حالا فکر آمد ول افکارو اعمت القلوب. اون فکرها دلا رو دنبال خودش میکشونه مثلا عقل میاد بررسی میکنه میگه بیایم با هم آقا دوتا چارتایی منطقی بکنیم واقعا اگر قرار ما معشوق داشته باشیم اگر قرار محبوب داشته باشیم ما که بد از جس شروع کنم ببخشید بذاری از جس شروع کنم خیلی مثال بالا پایین داره خیلی مثلا کودکان است ولی برای این که محسوسش کنم این کارو میکنم میگن معقول و محسوس بکنید راحت تر جا میفته الان من معدهمو مطرح کنم بنده با حضرت عالی یه جایی نشستیم آقا معده من شما قضا میخواد یه روز گرسنه نگه داشتی دو روز گرسنه نگه داشتی پنج نمیشه دیگه بالاخره باید غذا وارد معده کنیم حالا این برخورد علمی علم تغذیه یا علم پزشکی اینجا مطرح میکنیم میگیم آقا ما که قرار تو من غذا بریزیم ولی این چهار تا غذایی که اینجاست این یه دونه رو اگه وارد معده کردی فوری ما رو میکشه چنان سم قبیی داری که ما رو میمیرانه این دومی رو اگه وارد کردی زخم معده میگیری این سومی رو اگه وارد کردی دلدردی میگیری تا دو روز مینالی این چهارمی رو اگه خوردید سراحال شاداب میشید خب نمیگیم پس اینو به دل بدید دل ظاهری و غذای ظاهری حالا عقل میاد در رابطه با دل معنوی و غذای دل معنوی غذای دل معنوی چیه؟ معشوقه محبوبه چون دل بی محبوب که نمیتونه باشه میگه عقل میاد میگه آقا کدوم محبوب از خدا بالاتر؟ کدوم محبوب از اولیای الهی بالاتر؟ اگر شما دلتونو دادی به اولیای الهی خب به اولیای الهی دلتو پر کرد. این دل را به رنگ اولیای الهی در میاره دل به رنگ اولیای الهی در آمدم دل است یا دلی که میدید به یه معشوقی که به قول نظامی در اون شعرش دیدی با یه طب تو گرفته شده خب اینه که عقل میفهمه به خصوص این ویژگی دل دقت کنید همونطوری که غذا وارد معده میشه رو معده اثر میگذاره اگر محبوب وارد دل شد به اختزای خصوصیات محبوب دلم خصوصیت پیدا میکنه محبوب آلوده است دل میشه آلوده محبوب معصومه دل به سوی اسمت حرکت میکنه مثالی که اهل بن زدن چقدر قشنگه میگن آتش میسوزاند آتش خام را پخته میکند آتش نور میدهد، آهن تیره است، آهن زمخته، آهن سرده، آهن تیره است. اما شما آهن رو بذار تو آتش تبدیل به آتش میشه. حالا آهنی که تبدیل به آتش شده حرارت داره، میسوزونه، میپزونه، روشنایی میده. تا زمانی که اون حرارت گرفته شده آهن از آتش با او هست، ویژگی آتشم با او هست دل محبوبی را که در خودش جا داده تا زمانی که صادقانه اون محبوب محبوب اوست رنگ اون محبوب میگیره لذا میتونه آثاری از محبوب رو او هم بروز بده به اندازه ای که دل با او داده شده بر این مبناست که شما در مناجات محبین از امام سجاد علیه السلام دارید که از خداوند درخواست میکنه که خدایا از تو میخوام حب به خودت و حب به اونایی که تو دوست داری و حب به اواملی که منو به حب به تو میرسونه در حالات مرحوم هستلی قاضی نقل میکنن که به شاگرده خاصشون میفرموده در غنوت نمازتون حتما این دعا را هر روزه بخانید فشوردی از همون مطلب مناجات محبین امام سجاد علیه السلام مرحوم اصلی قاضی میفرمود این دعا رو بخونید اللهم ارزقنی حبک دل خب یعنی اونیکه دلوپر کرده دیگه یعنی من الان دارم میفهمم که چی بخوام که دلم چیز دیگه توش نبره چی ببره الله ارزقنی حبک خدایا از تو میخوام حب خودت بیاد تو دلم و حب ما تو حب اون رو تو دوست داری اون تو دلم بیاد و حب من یحبک اونایی که تو رو دوست دارن من اونا رو دوست بدارم ول عمل الذی یبلغنی الی حبک و اون عملی که منو میرسونه به اون چیزی که تو دوست می‌داری وجع الحبک احب الاشیاء الی الیه برای من جوری قرار بده احب اشیا محبوب ترین چیزها برای من اون چیزی باشه که تو دوست داری یعنی یکی از شاگردهای اخلاقیشون خدمتیشون رسید آقا یک سفارشی به ما بکنید فرمود قلم و کاغذ تو در بیار شون قلم و کاغذ در آوردن فرمود بنویس این شعر رو براشون خوندن سررشته دولتی برادر به کفار وین عمر گران مایه به خسران مسفار یعنی همه جا با همه کس در همه جا میدار نهفته چشم دل جانب یار همه چی توشه هست یه بار دیگه میخونم دقت کنی سررشته دولت برادر به کفار اون سررشته دولتی که قرار ما به کف بیاریم چیه وین عمر گرانمایه به خسران مسپار شما می‌دونید در زبان عربی معنی خسران امیختر از معنی ضرره. ضرری که ما تو فارسی می‌گیم زیان یعنی سود نکردن سرمایه محفوظه ولی سود نبردیم خسران سرمایه را هم از دست دادن. این که قرآن کریم در سوره مبارکه عصر میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر ان الانسان لفی خس الا للذین امنو و الصالحات اگر انسان ها میخوان اصل سرمایهشون از دست نره باید ایمان بیارن عمل صالح وین عمر گران مایه به خسران مسپار سرمایه دولت رو به دست بیار نزار عمرت زایه بشه چیزی گیرت نیاد معروف میگن که یه یخ فروشی تو بغداد هوای گرم تابستان داشت یخ میفروخت سرمایش بنده خدا چیزی بودی که امروز صبح قالب یخ میخرید تا غروب میفروخت و بعد فردا نزدیکی های ظهر شد و عس شد یخاب فروش نرفت داد میزد تو رو خدا بیاید بخرید که همه سرمایه هم در آب میشه آب دیگه چیزی ندارم میگن یک اهل دلی کنارش نشست گو بیا سوت دلان گرده هم آئیم. منم سرمایه عمرم در آب میشه هیچی ازش باقی نمونده عمره رفت چی ماغی موند چه کردم افسوس اونگاه که توانستم ندانستم اونگاه که دانستم نتوانستم سررشته دولت برادر به کفار و این عمر گران مایه به خسران مسپار یعنی همه جا با همه کس در همه میدار نهفته چشم دل جانب یار هرگه صحبت حاضر قائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است اگه دانشکام دلم با خدا باشه اگه حجرم دلم با خدا باشه اگه تو مجلس عروسی هم دلم با خدا باشه اگه تو مجلس این و اونم دلم با خدا باشه در همه چشم دل جانب یاره این میشه حب درست عقل باید این کار انجام بده لذا روایتی که دارم از امیر المؤمنین علیه السلام از الوسائل براتون میخونم العقول و الافكار، الافکار و الافکار و افکاری الگلوب که پیشوای دل دل سر خودش میکشونه این فکری که آقا معشوقی بالاتر از خدا نیست معشوقی ارزنده از خدا نیست هر ارزشی بخوای اون معشوق و اونایی که در اون را این عقل فهمید فکر فهمید حالا دل پشتر خودش میکشونه و القلوب و امت الحواس دل پیشوای حواسه یعنی چشم کجا میره اونجایی که دل میخواد دل بر چه مبنا میخواد بر مبنای فکر فکر از کجا زایده شد از عقل پس با عقل فکر درست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 هرچی او میخواد چرا؟ چون دل به اون جانب رفته الان یه مثالی از میکنم یه کمی ساده تر بکنه بحثو چون اوج محبت تو این عالم محسوس تو موارد غیر از مثل حب خدا و مسائل معنوی و عشق الهی و اینها قلقشی در او راه نداره حب مادر به فرزند دیگه این زبان زده همه دنیا اینو قبول کرده یه مادر پنجا ساله یه پسر هیچده ساله داره؟ پنج ساله گم شده مادر یادش میره؟ شب روز صبح عصر چقدر این مادر رو میخوان آروم کنن که یه کمی بیتابی نکنه؟ فرض کنید اسم آغازادش هست علی تا یکی میگه علی دل مادر از جا کنده میشه یا نه؟ چی؟ علی من؟ تا زنگ میزنن علی منه؟ تا یک تلفن میشه علی منه؟ چرا؟ چون دل به او داده تمام حرکاتش بر ما. حالا این آقا بعد از پنج سال گم شدن پیدا شد این مادر تمام حواس هواس الان میگم حواسشو بر مبنای اون وابستگی درونی متوجه این بچه میکنه یا نه عشق الهی یعنی این دل اونچنان به خدا داده شده است بفرموده امیر المؤمنین علیه السلام والقلوب ائمة الحواس دلها پیشوایان حسها هستند چشم را دل به اون جایی که بخاد سوق میده گوش را دل به اون سمتی که بخواد سوق میده لذا خیلی وقتا شده میگه آقا گوش کردی میگه بله میگم نه دل ندادی لذا زیاد شده دیگه میگم آقا جای دیگه بودی ظاهرا گوشد اینجا بود به همین جهت در زیل این آیه شریفه مفسران یه بحث بسیار قشنگی کردن کدوم آیه دقت کنید این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره یا ایها الذین آمنو ادخلو فسلم کافه یه نکته زریف قرآنی داره بعضی که این دقت ها رو کردن بهش پرداختن ما در قرآن کریم یه اسلام داریم یه ایمان اسلام قبل از ایمانه یا بعد از ایمان قبل از ایمان دیگه لذا آیه شریف هم داریم که وقتی قالت الاعراب آمنا آمننا از راه رسیدن و تا گفتن آیه نازل شد بینا چی نه شما ایمان ندارید شما بگید اسلام نه چون هنوز مراحلی مونده تا به ایمان برسید ما تو این آیه بعضیا گیر کردن خب ایمان که بعد از اسلامه پس این آیه میگه یا ایهاللزین آمنو اتخلوف السلم کافه یعنی بعد از ایمان مسلمان بشید اون وقت اونایی که این دقت رو دارن مثل مرحوم علامه تبا و این بزرگواران رزوان الله تعالی علی به این بحث پرداختن میگن ببینید ما اسلام و کلمات دیگر یه معنی لغوی داره یه معنی اصطلاحی کلماتی که در یک جمله ای به کار میره زمانی ما حق داریم معنی درست بکنیم که ببینیم در اینجا معنی لغوی مورد نظر یا معنی اصطلاحی الان مثال میزنم کلمه سلات در زبان عربی معنی لغویش چیه دعا درود تهیت. معنی اصطلاحیش چیه نماز با یه آداب خاص خب حالا اگر در یه جای قرآن فرموده ان الله و یصلون علی النبی اینجا با قرائن صلات به معنی چیه تحیت و درود دعاست ملائکه خدا بر پیغمبر نماز میکنن نه درود میفرستن اما اونجایی که میفرماد اقیم الصلاه ان الصلاه تنهان الفحشاء با, با قرینه صلات یعنی یعنی نماز اینو باید آدم با زبان آشنا باشه با باجه ها آشنا باشه با اون ضوابط استنبات آشنا باشه تا بتونه چه در روایت چه در آیه درست برداشت کنه خب حالا ما میایم اینجا کلمه سلم اسلام معنی لغویش چیه تسلیم معنی اصطلاحیش چیه کسی شهادتین گفت کسی گفت اشهدو الله اله الله و اشهد ان محمد رسول الله پس اسلام معنای اصطلاحیش شهادتینه و لذا امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمودن تو نهج البلاغه داریم. داریم الاسلام اقرارن بلسان و ایمانو عملن بالارکان اسلام هم شهادت این گفتید کافیه اما هنوز خیلی مونده ایمانه اما معنی لغوی سلم چیه تسلیم اینجا معنی لغبی رو اراده کرده چون بعد از ایمان آورده. اون چیه؟ میگه که یا ایوهاللزین آمنون ای کسانی که ایمان آوردی ات خلوف سلم کافه و کافش چیه؟ الان عرض میکنم. دقیقا در همه مراحل تسلیم باشید. تسلیم باشید. اینجا لغت مطرعه نه اصطلاح خب الا همه مراحل چیه؟ برمیگردیم به بحث خودمون. ما یه جسم داریم. شما مرحله تسلیم جسمی حالا در رابطه با خودمون اول بگم بعد بین ما و خدا آقا ما دو نفر کشتی میگیریم یکی بر بدن من غلبه میکنه من میزنه زمین بدن من در مقابل قدرت او چی شد تسلیم شد اما دلیلی که فکر منم تسلیم شده باشه نه من بدنا تسلیم شدم میگه به قول میگه دستا بالا آچاش شما حریفی من حرفی ندارم اما فکران ممکنه خیلی با ایشون اختلاف نظر فکری داشته باشم مرحله دوم تسلیم فکری حضرت علی مَسلبی رو قبول دارید بنده قبول ندارم با هم شروع میکنیم بحث کردن اون چنان شما ادله قوی به بنده ارائه میدید میگم تسلیم حرفتون درسته ولی نمیدونم چرا هنوز تو دلم نرفته پس تسلیم عقلی شدم تسلیم دلی هنوز نشدم تسلیم دلی چطوره شما وقتی توضیح میدید میگم مت... می آقا کاملا تا عمق جانم نشست پذیرفتم قشنگ قبول کردم یا الّذین آمنوا ادخلوا في السلم کافه تسلیم بشید در همه این مراحل. اینجا وقتی ما عقل تسلیم میشه نسبت به حکم خدا دلم تسلیم باشه مقام تسلیم و مقام رضا که در فرهنگ روایات ما تو بحث‌های اخلاقی خیلی ارزنده است ممکنه کسی ماه مبارک رمزان روز بیست ساعته سعد رو روزه بگیره حالا اتفاقا تو جایی باشه گرمن باشه بگه خدایا من روزه گرفتم ولی ته دلش نقنقم بکنه آ خدایا نمی این واجب نکنی این تسلیم عملی هست ولی تسلیم درونی به صورت دقیق نیست اما اون کسی که میگه خدایا اونی که تو گفتی از او بهتر پیدا نمیشه. با تمام وجود پذیرفتم. این میشه تسلیم دلی. حرکت آشغان ای که امیر المؤمنین علیه السلام راجبه این سرزمین ها هنا کابن و مسار و شهدا شهدا اینا کسانی هستند که آقلانه عاشق شدند شهادت را عاشقانه آقلانه پذیرفتن یعنی تو مرحله تفکر و تعقل از اونها قشنگتر استدلال نسبت به اینکه که الان وظیفه جز این چیزی نیست وجود نداره تو مرحله دلم میگفتن تو دل ما غیر از این هیچی جا نداره و ارزش انسانم به عقل و دلشه لذا دل را اون ارزش پر کرده حالا اگر مرحوم آستلی قاضی به شاگرداش میگه توی قنوت دعا نمازتون این دعا رو بخونید معلوم میشه یعنی چی؟ چرا؟ چون دقت کنید دوباره برگردم آقا این معده خالی نمیتونه بمونه اگر غذای سالم رشد دهنده رو به معده ندادی غذای آلوده میره تو معده غذای آلوده معده و بیمار میکنه به شدت و ضعف گاهی انسان میمیره گاهی انسان مسموم میشه گاهی انسان زخم معده پیدا میکنه گاهی چی و چی این مشکلات داره دل به معنی فعاد اون ارزش ارزنده الهی که در من تو قرار داده شده اگر محبوب واقعی توش نرفت بی محبوب نمیتونه باشه محبوب قلابی جاشو پر میکنن محبوب قلابی که اومدن گاهی انقدر محبوب قلابیه مثل اون غذای مسموم که دلو میمیرانه صاحبشو میمیرانه این دل به کلی مرد هر چه امام حسین روز آشورا با این مردم صحبت میکنه نرود میخ آهنی بر سینه یک ذره در این جان و دل چرا چون دل به جای دیگه داده شده مثالی اهل فن میزنن مثال خوبیه آقا این لیوانو در نظر بگیرید میگن که شما اگه بخواید این لیوان پر آب باشه هوا داخلش باید بیاد بیرون دیگه به هر نسبتی که هوا تو این شیمون به همون اندازه آب راه پیدا نمیکنه. به هر میزانی که در دل من و شما حب غیر الهی باشد به همون اندازه حب الهی در او راه پیدا نمیکنه حالا ببینید در قالب دعا معصومین ما به ما چی یاد دادن عنایت بکنید از زبان معصوم براتون ارز کنم شما در دعای کمیل میخونید وجعال لسانی به ذکر کلحجا و قلبی به حبکه متیما متیما یعنی چی؟ یعنی قلبم به حب شما تمام پر پر لبریز دیگه جایی برای چی؟ هر هفته شب جمعه میخونیم الله باید معنی به معنیشم توجه پیدا بکنیم اگر بناس از زبان امیر المؤمنین شب جمعه دعای کمیل بخونیم یعنی داریم با خدا راز و نیاز میکنیم از خدا درخواست میکنیم چرا حضرت میفرماد و قلبی به حبکه متیما دلم حب تو رو نه حالا یه ذره از اون حبم تو دل ما بیاد نه رو بگیره من غیر تو رو نذارم بیاد تو این دل وقتی دل خدایی شد دیگه همه حرکات عالم میشه خدا این فرد در این عالم میشه خدایی دعای ابو همزه ماه رمضان، سهر ماه عبادت، در اون وضع خاص نیمه های شب که خدا معرفت شو بده، خدا حالشو بده، از زبان سید ساجدین، زینل آبدین زینت عباد عالمه، سید ساجدین عالمه هستیه، داره با خدا راز و نیاز میکنه. اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبًا تم لک. قلب من از حب تو پر مالمال چیزی دیگه نمونه برای جایی دیگه امام صادق علیه و السلام اصول کافی جلد دوم صفحه 586 اللهم مملع قلبی حبن لک خدا دلم را پر کن از محبتی که برای تو باشه دیگه جایی برای محبته غیر از تو باقی نگذاره که در این صورت این دل میشه دل الهی حالا از همین امام سجاد صحیفه سجادیه دعای نهم این فراز هم دقت کنید و اعمه کور کن اعما و اعمه کور کن افسار قلوبنا چشمای دل منو اما خالف محبتک از اون چه که مخواد با محبت تو مخالفت کنه یعنی اگه قرار چشم دل من به یه طرفی دوخته بشه که اونا رو بیاره تو دل من که این دلم با این چشم رو کور کن چقدر دعا داریم خدایا چشم دل ما رو باز کن اما چشم دلی که باز شود برای دیدن محبوبی که ارزش داره تو دل بره حالا یک یادگاری از امام باغر علیه السلام که قول داده بودم برای این مجلس امشب شما عرض کنم ببینم دیگه چقدر وقت اجازه میده جمع بندی کنم این یادگاری رو دقت کنید نتیجه بحث پنج شب ما باشه یه نتیجه بگیرم برسم به این فرموده امام باقر عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام طبق این روایت که آقا امام باقر علیه السلام برای ما بیان فرمودن، وقتی به سرزمین کربلا رسیدن یه ویژگی برای شهدای کربلا ذکر کردن که این ویژگی آدمو رو میده اگر کسی علی رو قبول داره اگر کسی شیعه امیر اگه اگه میخواد درس از امیر فرا بگیره اگر کربلا براش مهمه اگه میخواد از کربلا درس سرمشق زندگی بگیره این یک از اون جاهای جانانه ایست که آدم به فکر فرو میبره و اون چیه؟ فرمود اینجا مناخ کابن و مسار او او شاقن شهدا، که چی؟ لا یسبقهم هم منکان قبلا ولا من لا منکان بعد هم. نه قبلی یا نه بعدیا نسبت به اینایی که اینجا پیاده شدن و شهید عاشقانه شدن نمی، نمیتونن سبقت بگیرن یعنی اینا به یک درجه ای رسیدن که امیر المومنین امزا کرده اینا گل سر سبد عالم هستی در پیشگاه خدایند همونجوری که روز آشورا هم امام حسین علیه السلام فرمود لا اصحابه که اصحابی اون بیان معروف صبح آشورا حالا ما سینه زدیم خدا قبول کنه آش پختی شده زر پختی چیلو قیمه دادی به مردم خدا قبول کنه گریه کردی مجلس گرفتی خدا قبول کنه همه اینا هدف بود یا مقدمه؟ همه مقدمه بود هدف چیه؟ چرا امام حسین شهید شد؟ از ما چی میخواد امام حسین؟ ما قراره به عنوان پیرو به امام حسین چه کار کنیم؟ یه آشورایی در تهران؟ یه بنده خدایی که خدایش بیامرزه دل سوخته بود دل سوخته بود شاگردای زیادی هم تربیت کرده بود خیلی هم زحمت میکشید پس عاشورا که از دوستان به من زنگ زد ماالا خسته کوفته همه داغون از شدت فشاری که شب و روز و غیره و طبیعی دیگه سینه داغون بدن خسته بیخوابی گفت فلانی زنگ زده گفته حتما الان بیاید اینجا ساعت مثلا 5 بعد از ظهر عاشورای تابستون آ تازه مردم ناهار خوردن از جلسات برگشتن چی شده نگران شدیم خبری شده باشه خدمت این استاد پیر دلسوخته بلاغا فرمود امروز عذرت میخوام ببخشید روز عاشورا بود امروز چای فاضلابای تهران چقدر بالا اومد در اثر مقدار غذایی که مردم خوردن خیلی اطعام شد چای فاضلابا چقدر بالا اومد فکرها در رابطه با امام حسین چقدر بالا اومد. عزیزاد زیر گریه نمیگیم قضا ندی داشته, با داشته باشه مجلس امام حسین باید عزامت داشته باشه قزا بدید پذیرایی بکنید ازداری بکنید ولی اینا مقدمه است هدف اصلی چیه من اگر آشورای امسال نسبت به آشورای پارسال نسبت به ابی عبدالله یه پله بالاتر نیومده باشم من چیکار کردم لازم امشب می خواهی رو بکنم عزیزاد نمیدونم تا سال دیگه ما یه بار میایم اینجا زنده باشیم نباشیم قسمت بشه بیایم اگر اومدیم که با هم اید. اگر هم نیومدیم دنیا نبودیم حلالمون کنیم. ولی یه قول به من بدید من مخصوصا با جوو کار دارم لا اقل تا آشوررا بعدی دوازده تا کتاب این دوازده ما ماهی یکی بخونید شما رو به جان ماموزه از اهل فن بپرسید بابا دوازده تا کتاب تو یک سال زیاده ما الان دوستانی داریم شبی تا صبح دو تا کتاب میکنن مگه میش آقاش شما اگر ماهی یک کتاب بخونید سالی دوازده تا 50 سالش میشه چند تا 600 تا کتابم برای یه عمر چیه الان با این همه بحثای علمی یا فکری که تو دنیاست من ماهی یک کتابم نخونم لا این قول رو من بدید حالا برگردم خب چی شده که امیرالمومنین میگه اینا اینا اینا یه چیز دیگه اینا یه چیز دیگه اینا سبقت گرفتن اینا رفتن اینا بالا خب پس من من فقط بگم اینا بالان اینا بالان اینا رفتن اینا رفت خب من چی یاد بگیر دنبالشون رابی افت تو هم یاد بگیر اونا چی بودن اونا عاشق شهید شهید عاشق خب شهید یعنی چی یعنی همه چی برای خدا لذا مگه ما نداریم ممکنه کسانی جان در راه خدا ندن ولی شهید حساب بشن داریم یا نداریم تا این حد تا این حد یکی دو تا سه تا روایت نداریم سند میدم بهتون غیبت نعمانی رو نگاه کنی غیبت شیخ توسی رو نگاه کنی نوع کتابایی که در رابطه با امام اص علیه السلام مطرح شده این منتخب با رو نگاه کنی بابی داره در این باب کسانی که در دوران غیبت امام زمان به وزیفشون آشنا شدن به خاطر خدا به وزیفشون عمل کردند از دنیا رفتن ظهور امام زمان رو درک نکردن به منزله کسانیان که بعد از ظهور امام است در رکاب امام عص شمشیر زدند، شهید شدند و در خون خود غلطیدن یعنی چی؟ یعنی وقتی فهمید وظیفش چیه همه چیز گذاشت کنار بر مبنای رسالت الهی به وظیفش عمل کرد یعنی همه چی برای خدا حالا یه وقت جان باید داد خب با جان داد یه وقت مال باید داد مال داد یه وقت آبروی برای خدا باید داد آبروری باید داد یه وقت قلمی برای خدا باید داد یه وقت قدمو برای خدا باید داد هر چی که هست اما چگونه یه قید گذاشت عاشقانه عاشقانه چیه احساساتی نه حیجانی نه تقلید کرکرانه نه بر مبنای درک عمیق عقلی با این همه بحثایی که این پنشب کردیم و دل را از هرچه غیر است زدودن و کنار زدن عاقلانه معشوق واقعی را در دل جا دادن به اقتضای سطح اون معشوق واقعی دل شکلی از اون معشوق بگیرد زبان بیان او شود نگاه نگاه او شود اوجش میشه امیر المؤمنین ید الله هست لسان الله هست این الله هست الله هست مگه خدا گوش داره. یعنی او جز اون چه که خدا میخواد نمیشنبه. زبان جز اون چه که خدا میخواد نمیگه. چشم جز اون چه که خدا میخواد نمیبینه میخوای ببینید خدا به چی میخواد نگاه کنه ببین علی به چی نگاه میکنه. لذا علی عین الله هست علی یاد الله هست علی اوضون الله هست علی شما هم پیرو باشید چرا؟ چون تو دل غیر از خدا هیچی نیست. حالا ببینید. از زبان امام باقر علیه السلام وقتیه اجازه نمیده کافی جلد دو صفحه 103 حدیث شماره 11 این در واقع جنبندی همه اینا میشه خب تا اینجا فهمیدیم حرکت عاشقانه عاقلانه عالی ترین حرکت پس از حالا به بعد سعی کنیم نمازمون نماز عاشقانه باشه خدا رحمت کنه مرحوم مهندس مصحف همشهری شماها بود میشناختید هماتو ایشون گایی شوخی‌های عجیب و غریب می‌کرد یه بار میگفت که آقا شده مثلا طرف دم افطار گرسنه میله به غذا داره شما افطار کردی او ازرا رسید میگه شما افطار کردی خوشا به حالت من که نخوردم اما چرا میگه شما نماز خوندی خوشا به حالت من که هنوز نخوندم پس معلومه جاذبه نماز به اندازه جاذبه افطاری برای من نیست چون میگم شما غذا خوردی خوش با حالت منون نخورده میگه ای خوردی منو الان بیا میخورم چون رقبت داره. اما چطور نمازو؟ پس بیایم نمازمون رو عاشقانه کنیم. بیایم خدمت به خلقمون عاشقانه کنیم بیایم رابطه دینیمون رو عاشقانه کنیم. نه اینکه آقا بنده کتاب میکنم آخر شب خسته شده حالا هیچی ندارم با یه دهندره و با یه خمیازی یه نگاهی به این کتاب میکنم اینا اینا کاری رو ی بکنه. تا به عشک نرسیم. همونطوری که. شب آشورا حبیب ابن مظاهر رو دیدن ای خدا چی میگم پیرمرد مرد هشتاد ساله شوخی میکنه جوک میگه میخنده به تعبیر من گفتن حبیب تو علی حرفو نبودی گفت چطور شب جوک به قول من جوک نگم شوخی نکنم الحمدلله رسید به جایی لذا روزش که میشه آب اومده میدون یه جنگجوی قویه این از چون قرار گذاشته بودن جنگ تن به تن باشه. یه نظامی داشته برای خودشون. گاهی هم شکستن حجمه می کردن. قرار بوده جنگ تنگ بتنگ باشه. وقتی این اومد میدون همه ترسیدن. هیچی نرفت جلو. دیدن می ترسن با اون جنگ تنگ بتنگ کنن. از دور سنگ می پرندن. لباسه شکن، ذره شکن. و چی می ترسونی؟ بزنید. خیال کردید من از مرد می ترسن. ما اومدیم برای معشوق هر چی داریم بدیم حالا وقتی لازمه جان بدیم جان میدیم خود عبی عبدالله وقتی دلش خدا رو گرفته وقتی که ابو سمام اومد گفت آقا وقت نمازه گفت خدا تو رو از نماز خونه قرار بده چه یادآوری کردی روز آشورا و میان گیر و دار یک تن از اون آشقان بیقرار قرار ابوسمام سائدی بود نام بید کرده راه عشق را مردانه طی در چنان قوقا و آن جنگ و جدال عشق افکندش به شوق و وجد و حال سوی شه بشتافت با سوز و گداز عاشقان دم همی زد از نماز از نماز اون مرده حق تا نام برد، شهزت تعداد مسلی نشمورد. ازن شه سادر شد از بهر ازان، پس معزن گفت تکبیری چنان که صدایش عالمی متحوش شد. هرچه بود صاحب صدا خامود شد، این که می آید کنون بهر نماز، کعبه را او ساختن در هجاز. کعبه مقصود ایجاد است او، کعبه را هم اصل و بنیاد است او. هم صفا هم مروه باشد هم منا هم مطاف عرض باشد هم سما در نمازش هر طرف خواهی بیست در درون کعبه رسم قبله نیست اون نمازی که ستون دین بابد گرز پیغمبر شینیدی این بابد در قیام اولین بعد از رکو تیرباران شد از جانب شروع کشتگان عشق پیش شاه عشق سر به کف بگرفته هر یک راه عشق خونشون بنوشت بر لوح حیات از سلات ات احل آلم از سلات. تا قی... جهانی زین قیام آگه شود. آگه از مقصود شاهنشه شود. که این حسین با کشتگان عشقباز غصدشون بوده است احیای نماز این نماز ظهر بود حالا نماز عصد چی شد؟ پس نماز عصر را بگذار شاه خود فرادا در میان قتلگاه پس نماز عصر را بگذاشا خود فرادا در میان قتلگاه اون نماز عشق که از خونش وزوست عاشق و معشوق اونجا روبروست پس حرکاتمون میخوایم عاشقانه باشیم نشانه حرکت عاشقانه چیه؟ امام باغر الان دارن به ما نشون میدن اینو برای این بحث چند شبه از کردم اصول کافی جلد دو صفحه 103 حدیث 11 اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا امام باقر من شما خیلی روایت قشنگه کاربردیه کاربردی اذا اردت ان تعلم ان فيك خیرا اگه اراده کردی بدونی که تو خیر داری یا نه به درد میخوری. خودمونی بگم به درد می یا نه مالی یا نه توی چیزی هست بیارزه یا نه؟ حالا همه اینا درسته دیگه ازا عربتن ان نفی که خیرا فنزر الا قلبك. نگاه کن به دلت یه گوشه خلوتی بگیر مخصوصا نصف شب همه جا ساکت و آرامه حالشو داری چند رکت نماز شب بخون اگه حالش داری فرش اتاقو بزن کنار رو زمین خالی بشی خودتو کاملا خالی کن از همه تعلقات آروم یه گوشه خلوت که ریا اونجا معنا نداره بعد این فرموده ای امام باقر رو با خودت پیاده کن فن زر الی نگاه کن به دلت فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیه ففیک خیر والله یحبک اگه دیدی تو دلت اونایی که خدا رو اطاعت میکنن دوست داری اونایی که خدا رو معصیت میکنن بدت میاد بدان در تو خیر خدا هم تو رو دوست میداره و ازاکانیب قزو اهل طاعت الله اگه دیدی اینایی که اهل اطاعت الهی اینا رو دوست نمیداری بابا اینا امعلان اینا مرتجع هنوزم میگن چادر هنوزم میگن که آقا مجالس گناه اینجوری ما شرکت نمیکنیم. هنوزم میگن اینا همین با پرستیج قرن بیستم ما نمیخوره باید یه مقداری دیگه نون و برخه روز بخوریم چنین چنان باشیم اگه دیدید اینایی که به خاطر خدا دارن به وظیفه دینیشون عمل میکنن. شما اینا رو دوست نداری و اذا کان یبقى ذو اهل طاعت الله و يحب اعلم معصيته اونایی که عصیان الهی میکنن. از اونا بدید نمیاد با اونا بیشتر دوست داری باشی فلی سفیک خیرون بدان در تو خیری نیست والله و یبغزوک خدا هم نسبت به تو بغض داره نمیپسنده پسنده و امن احب هر انسانی با اونی که دوست می داره با اون محشور میشه دوستی امام حسین برای اینه که دلمون حسینی کنیم دل حسینی باید رفتارشم حسینی باشه چرا تا میگن از سلام یا عبا عبدالله دلمون میلرزه؟ چرا تا عکس گنبد عبی عبدالله تو صفحه تلویزیون میاد حالتون یه جوری دیگه میشه؟ دل را پیدا کرده. پس قدر این دل رو بدونیم رو این دل کار کنیم. حالا اونایی که این معنا براشون جا نیفتاده بود. دیگه محرمه دیگه میگم. آقا خشونت، زشتی، شیطنت، و بدی تا چه اندازه شما در فقه ما نگاه کنید وقتی میخوان سر یه گوسفند رو ببرن میگن شما چهار رگ رو یه دفعه نکنید چرا چون هنوز جان داره کارد به نخا میرسه کارد به نخا برسه درد خیلی شدیده قابل تحمل نیست لذا میگن به اونجا که رسید ویل کنید وقتی این گوسفند جان داد بعد کار به نخا برسه سر رو جدا کنه ولی سر ابی عبدالله رو از پشت سر بریدن شاید این که شاعر گفته از حرم تا قتل گه زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین اما عشق چی بوده کارد از پشت سر حسابت کرده اول به نخا دست و پای عبی عبدالله به زمین کشیده می شود ولی شکایت نمی کند الهی رزل به رزاق تسلیم لغذاق لا معبود از سفاق آیا های عشق تفسیر شد خنجری با خنجری درگیر شد chey یه وقت زینب دید اسب بی صاحب امی همدالله اومد از و از زلیبه ای زن و بچه از خیمه ها بیرون دویدن اما دیدن اسب بی صاحب اومده اسب عصب گرفتن یکی میپرسه بایا برادرم کجا رفت یکی میگه بابامو کجا بردی یکی میگه آیا به بابام آب دادن یا نه زینب به طرف تل زینب مد دید شمر با خنجر وارد گودال قتلگاه شد شاید صدای زهرا از گودال قتلگاه به گوش برخی رسیده باشد عزیز مادرم حسین سَلَ عَلَيْكَ يَا يَا يَا يَا یا سیدنا و مول آمه ناتبجه آمه و ستشفه و به و وقت دملا که بی نهیده‌ی حاجاتنا یا و جیحان اندامشش بالا نا ناد علیان نظهرن عجوه تجده اونن لکفه نمائب همه و بإلهيتك يا الله بنظرتك يا رسول الله بإلهيتك يا علي يا علي يا علي يا علي, يا علي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 Amen.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 جلال الكرام وبمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغلوب سمت غلبي على دينيك وكبر يا غازي الهاجاد ويا كافي محمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء غدير برحمتك يا رحم الراحمين ويا غياس المدر المستغيثين يا دليل المتغيرين یا غایت آماده لارفین، یا جلیس الزارقین، یا علیس اللّاکین، یا رب العالمین، یا مالک يوم الدین یا الله. ناجات منك يا یاد یه نجنا و خلصنا به قبیل الله الرحمن الرحیم اما ای جیب آل اما ویا جیب وسو، یا مجد و دعوت مزدورین عجب نو، ویا غیاثال و محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق حسين وتسعة المأثورين من جرية الحسين اللهم عجل بليك الفرا وجعلنا من صاری و آوانه، الله من نسر الدين و اخزل من خزل المؤمنين اللهم منصلح كل فاسد من امور المسلمين الله مشکل الزالمین بالزالمین، و بينهما صالحین اللهم الله لا تسلط علينا من الله يرحمنا، الله ما بفیدنا و ما خدایا اون چه در این ایام به بندگان صالح عنایت کردی به ما و جمع ما مرحمت بفرما شیعیان این مملکت دشمن شاد مفرما شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون ریشکن بفرما اموات و ذبیح و غوغ مرحوما جای امامزاده و خانومشون غریق دریای رحمتت قرار بده به نبی بها